up up up وانی فارسی. منابع کردگاری جو دلوان سلام ل عزیزان و ل اجرانی برنامه وانی فارسی. خوشحالی امروز پیکده گینا. محمد او خندكار ميسريي لا زان کوي تاران درزدخويني استا لبازارا او ديهوه كراسيك وقت دياري بو هاوراكي بكرت لشقام پياسا دكات لا تانيشت جامخاني فروشگا كان رادا وسطيو سيدي جلوبرگي نيو اواندكات لهندگ لدوكانا كان نرخي جلوبرگا كان دياري كرا وو لهندگي ديكش وانيا كات كاتي اواريو شقام قربالغا خلقه کیزور زور وسط کان دین و دشنو هندی جار سری کی دو کان یان شتیک دکره. محمد دوای تابه گران دشت نیو فروشگای کو لقل فروشیار ما من دکت. لقل مامن بو بستنی و تویج آوان سرتا تکای سرنجیکی و شنوه کامدن. پیراهن پیراهن کراس. من می خواهم من می خواهم دمهوه چه پیراهنی چه پیراهنی چه کراسک. دوست دارید دوست دارید دتانوی؟ مردانه مردانه پیوانا، اندازه اندازه قواره بزرگ بزرگ گوره خودتان خودتان خوتن برای خودتان برای خودتان بو خوتن می خواهید می خواید دانه برای برای بود مناسب مناسب لبارة نه خیر نه خیر نه خیر برای دوستم برای دوستم بود هورکم من می خرم، من می خرم، من دکرم. چه رنگی، چه رنگی، چه رنگک؟ آبی، آبی، شین، سبز، به بفرمایید. بفرمایید، فرمون. ببینید، ببینید. بروانن. این رنگ، این رنگ. ام آبی کم آبی کم رنگ. کال. بهتر، بهتر. باشتر. چطور است؟ چطور است؟ چونه؟ دوستتان؟ دوستتان؟ حرکتان؟ زرد، زرد، زرد. او می پوشد. او می پوشد. نمیدانم. نمی دانم نزنم فکر می کنم فکر می کنم لاموایا او نمی پوشد او نمی پوشد دبر نکات همین همین هر اوا خوب، خوب خوب اشترك باوردي جويب وكساكاني نيوان محمد وفلوشيالكا رادى غرين سلام آقا، من یک پیراهن می خواهم سلام آقا، من یک پیراهن می خواهم سلام، چه پیراهنی دوست دارید؟ سلام. چه پیراهنی دوست دارید؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ پیراهن را برای خودتان می خواهید اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. پیراهن را برای خودتان می خواهید اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. نه خیر. پیراهن را برای دوستم میخرم. نه خیر. پیراهن را برای دوستم میخرم. چه رنگی دوست دارید؟ چه رنگی دوست دارید؟ آبی یا سبز. آبی یا سبز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید بفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کم رنگ بهتر است نه نه این رنگ خوب نیست آبی کم رنگ بهتر است این پیراهن چطور است دوستتان پیراهن زرد می پوشد. این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد. نمیدانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است. نمیدانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است. فرزن استاش همان و تویش باور گرانی کردیوه. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام ککا من کم کمدویم سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ سلام، چه کراسکت دو؟ یک پیراهن مردانه، اندازه بزرگ کراسکی پیوانه، قواره گوره پیراهن را برای خودتان می خواهید، اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست کراسکت با خود دو، قواره گوره با تو اندازه نه خیر، پیراهن را برای دوستم میخرم. نیر کاسکم با حورم دوه چه رنگی دوست دارید؟ ح به چه رنگ یک دکی؟ آبی یا سبز شین یان ساوز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید. فرمون ام کراسانه ببینن؟ نه نه این رنگ خوب نیست. آبیهم رنگ بهتر است نه نه ام رنگ بشنییه شینی کال بره. این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می ام کراسه چونه؟ هورکت کراسی زرد ده برناکت؟ نمیدانم. فکر می او پیراهن زرد نمی پوشد، همین پیراهن آبی خوب است نزنم، پیوای او کراسی زرد ده برناکت، هرم کراس شینه باشه برزن امزاریج جوی با و توی جکراد گرین بلام تنیه بفرسیم. سلام آقا. من یک پیراهن می خواهم. سلام. چه پیراهنی دوست دارید؟ یک پیراهن مردانه. اندازه بزرگ. پیراهن را برای خودتان می خواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم. چه رنگی دوست دارید؟ آبی یا سبز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ نمیدارم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است. ارزان خو جوتان بو وتو جکر راګرت زانیتان محمد چن کراسی بینیو لنیو اواندا کراسیکی شینی کارجی حلجردو کری کبره فروشیار کراسکی بو پچای وو محمد دوای اوی پارکی دا مالاوی کردو ل فروج در امش لرد د کوتای برنامه امجاری وانی فارسی تا به یک اشنوه که دیکه که تو ساتی که خوشتن با به